الحمد لله رب العالمين صل الله علیه سیدنا رسول الله و آله و و و رحمت خدمت در می‌دونم قبلا sink وارد بحث هستند. استاد دو مطلب معروف جابریت و خاصریت شهرت رو که عرض کردیم بین های متأخر ما مثل شهید سانی در لومه و غیر مطرح شده ایشون مطرح کردن. اول بحث رو در امر اولش خوردنشون چون خب واقعا هم باید بحث رو بعد از عدله تمام عدله زشن میکردن لیکن خب ماده اینه دلیل سرم و چارم یعنی ماده اینه سیره اجماع و عق به امر انوه اولیشون رو خوندیم که مسئله بسفرا جابریت شهرت بود امر ثانی رو هم راجب به جابریت هنوز کلامات هم نشده بعد اینشالله هر رو با هم ازمه حالا امروز در صفحه 236 به بعد ان الخبر اینکان صحیحن و موسقن فی نفسه هل یکون و اعراض و مشهورن موجبن لبن سخوتی ان الحجی انلاع المشهور و بین هم زالک. بل سرهو انهو کلم از داد الخبر صحتاً ازداد زعفن و رهنن عرض کردم از عباراتی که از مرحوم نایلی نارف میکردم بعد ایشو میتونم و تحقیقا عدم و تمامیت زالک این درست نیست کاسریت هم درست نیست نه جابریت و نه کاسریت از بعد کوم الخبر صحیحن و موسقن موردن لقیام سیره و مشمولن لإطلاق لعدلت لفظیه علامه مقدمه ذکر وا التعدیل کلا قبول نکردن یعنی مثل خبر آیه نو رو قبول نکردن عمد در رو قبول کن لا وکل درف الید انهل راز خلاصه صحبت ایشان اینه که اگر خبر صحیح بود یا از عسکرم اونی که مرحوم استاد تا اواخرم از ایشون میشنفتیم همین دو قسم صحیح میدونن اینه اینی که در اون صفحه 233 234 وارد ده حدیث حسن هم قبول میشه نه اون نقطه ای نداره. خلاصه صحاتیش اینه که اگر خبر سقه بود رابی سقه بود حالا یا صحیح باشه یا موسط این حجت فی نفسه اگر حجت شد اعراض مشهور چون اعراض مشهور حجت نیست لا حجت نمیتونه حجیت رو از بین ببره این نیست که اعراض مشهور چون اعراض مشهور خودش حجت نیست اگر حجت باشه چرا؟ فتوه مشهورشون چون حجت نیش و از فتوهی چون حجت نیست لاحجت صلاحیت نداره که حجت رو از بیند بره پس اون خبر صحیح از بیند میره نه ازا تسالم جمیع الفقه ها حکم مخالف اندل خبر صحیح اول موسطقی نفسه یه سلن الی علم اول اطمئنان از خیلیشون در اینجا قبول کردن نه عمل مشهور تسالم به انها خبر لم لمیست درمین المعصوم او سذر انتقییته به هر حال یا صادر نیست یا مشکل داشته فیست خط الخبر المذکور عن الحجیه لا محاله کما تقدمت الاشارت علیه از کلم کجا نهو خارجان محل الكلام اما از اختلف العلماء علا قولین و ذهب المشهور منهم الى ما یخالف الخبر صحیح اول موسط و اعرزو ان و اختار قیر ما من هم ما هوا المطابق هو المطابقون للخبر المسهور فلا دلیل رفع الیر عن الخبر الالی بله یکونو حجتن فی نفسه لمجرد اعراض المشهور ان پس نکته اساسی در کلمات ایشان در اینجا اینه که این خبر فی نفسه حجته و اعراض مشهور چون حجت نیست یعنی شهرت چون حجت نیست نمیتواند غیر حجت حجت رو از کار بندازه به اصطلاح ما از کنم که این خلاصه مطلب این شام و اما به لحاظ به اصطلاح تلقیه به, به, به لحاظ اقوال در مسئله اجمالا چهار تا احتمال و شاید تا قول وجود داشته وجود چهار تا قولم باشونه که من خرزم سه تا قولم یکی این که شهرت عملی یعنی فتوهای بر طبقی خبر کاسر و جابر باشه اگر صحیح باشه شهرت برخلافش باشه کاسر باشه اگر صحیح نباشه جابر باشه این شاید مثلا مشهور بین علماء اینه از محققین اخیر مثل مرحوم نایین و آزوینا مبناشون بر همینه و از قدما هم امثال شهیدستان اینها در خلال کلماتشون دیده میشه قدمایه نصد به زمان ما و عل احتمال دوم همین راهیست که مرحوم استاد رفتن که شاید تا حدی هم ظاهر عبارت مثل مدار و هم باشه و اون این که شهرت کلن نه جابره نه کاسر خب دقیقش هم خوندیم برای هر دو و نفی این دو سمتلا احتمال سوم اینه که قبول بکنیم که خبر جابر هست شهرت جابر هست اما کاسر نیست شبیه استدلالی که ایشون در اینجا آوردن شبیه اون استدلال مثره چون میگه اگه خبر صحیح بود خودش شینسه حجته از اونورا شهرت چون حجیت نداره نمیتونه کاسر باشه اما اینکه شهرت جابر باشه چرا چون خبر فی نفسه که حجت نبو ضعیف بود شهرت میتونه با اون زمینه بشه و موجب وصول به اطمینان بشه پس کاسریت رو قبول نمیکنن اما جابریت رو قبول میکنه یه احتمال هم عکس مثلا که عکس این احتمال که دریشان هم همین وجبهی که اینجا آمد این خلاصه مطلبی بود که مرحوم و استاد فرمودن و یه اشکالات کچلوت و عباراتی ایشان بود که اونا رو دیرو زرسه و اما اصل مطلبی ایشان ایشان چون یعنی زمینه رو بر این گرفتن که حجیت خبر سقه مفروقن انهه مشکل کار ایشان اینه چون مفروقن انه گرفتن که حجیت خبر سقه نه. انه بین همه علماء مثلا چون سیر اغلام ادعا کرد لذا چون این تصور رو دارن خیال میکنن وقتی خبر صحیحی در جایی بود خبر ای بود خب این حجته خبر سقه آمد این حجته حالا که حجت آمد شهرت چون شهرت حجت نیست نمیتونه چلو اون رو بگیره دقیق کرده یعنی اون ذهنیت ایشان اصل حجیت خبر صحیح و عدم حجیت خبر غیر صحیح این ذهنیتی ایشان یعنی ملامت اصولت بود لزا در اونجا این جور فرمودن در بحث دیروز که این خبر فی نفسه حجت نیست شهرت هم که حجت نیست کار نمیتونه بکنه امروزم این هم اینجا این فرمودن این خبر فی نفس حجت شهرت هم حجت نیست کار نمیتونه بکنه پس یک ذهنیتی مرحوم و استاد اصولا داره و اون حجیت خبر سقه تعبودن خب اصل مطلب اینجا سنه این اصل مشکل با ایشون اینه که اون کسانی که قائل هستن به این جهر معلوم نیست نکتش اون نکتهایی باشه که ایشون فرمودن اونا اصلا قائل هستن به این که خبری که موسوقون به را موسوق بشتاریم حجته اصلا به این یعنی این یک فرزیست که ایشانی کردن خوب در قطع ایشون میگه این خبر رابی سقه هست خب کلام هنها کی گفت حجته؟ با اعراض مشهور کی گفت این حجته؟ این مبنای فکری خود ایشانه به فرق بودیم تو استدلال این مبنای فکری خود ایشانه که حالا که خبر سقه شد پس حجته شهرت هم که حجیت نداره پس نمیتونه کاسر باشه توجه نشده این که این مبنایی رو که ایشون قبول فرق بودن و مسلم گرفتن خود این مبناه مسلم نیست. از کجا شما فرض این خبر حجت اونا دارن میگن اگر خبری بود ولی او صحیح، لکن مشهور اعتراض کرده، پس حجت نیست. بگنم. چون اونا خبر رو به مجرد وثاقت راوی حساب نمی کنن. یک جوری استدلال کردن که انما طرف مقابل این مقدمات رو قبول داره. یعنی بفر چی شد؟ خیام میگن طرف مقابل قبول داره که این خبر حجت است. حالا یه حجت همون مقابلش نیست نه اصلا بحث این نیست از ایشون تحجیبه از از از تو استاد اون کسی که میگه اعراض کاسره اصل این مطلب رو قبول نمیکنه که میگه خبرهجته اون میگه خبری که شواهد باشه حجته این اصلا حجت نیست در اونجا هم همین مطلب رو یعنی هم در جابریت و هم در کاسریه یک امری رو محروقان انه گرفتن که انا محروقان انه گرفتن که همه علما حجیت خبر سقه قبول دارن به <تصحیح> چون قبول دارن پس بنابراین و اگر خبر هم سقه را و سقه نبود حجت نیست که این محروقان انه مقام استدلال این طوره خب طرف مقابل اصل مبنا رو قبول نداره. اون نظر اون کسی که میگه جابریت مشکل جابریت رو به این جهت میکنه که حسوق پیدا نمیشه اون منشعه به اصطلاح حسوق هم عبارت از مجموعه قرائنه اگر خبر ضعیف بود بسیار خوب. این یک قریمه، یک شاهد وجود خبر بودش یک شاهد اگر دیدیم که با این چون یک شاهدی نیست که حسوق آور باشه اگر عمل مشهور به زمینه شد این خبر تردویت میشه و حجت میشه اونا حرفشون اینه نه این استدلالی که مرحوم و استاد میتونه که حجت نیست اونم حجت نیست زمین... اونا اصلا نظرشون رو شواهده به تنهایی فی نفسه حجت نمیدونن پس این مطلبی رو که ایشون جابرن و کاسرن فرمودن انصافا اصل زیرمناش روشن این روشن به مطلبی ایشان و استدلالیشان. ایشان پس استدلال ایشان تا این حد که یک در جاوریت تباییون از مرحوم نایین نهاره همونه که نکته نکته تباییونه دو هم یک مطلبی رو دیگه نهاره که نفس نقل خبر ضعیف توصیق مخبره نمیدونو حالا این کی گفته ایشون نهاره همونه نهاره در اینجا که این توصیق مخبره اونی که هست شواهد وصوب به مخبرم بهه نه توصیق مخبره حالا چطور شدیشون توصیل مخبر گرفتن و نقل کردن اصبا می خدمتون راجع به اعراض هم فقط همین مقدار که چون هجت هست و لا هجت نمیتونه حجت رو ساقص بکنه. مطلب دیگری اضافه نفرد اسکر اولا اصولاً در این مباحث و اصولی ما هم عرض کردیم اینا از قبیل قضایای فلسفی یا قضایای منطقی نیست از احکام عقلی نیست که اینطور مثلا نکتهش به و عام این است و مثلا اینجا دلیلش این است و این دلیل رو به این سوال لذا است و اینجلا حجت مع الحجت است اصولا مسائل اصولی ما حتی خیلی مسائلی که الان در اصول جنبه کلی داره اینها به نحوه کلی تره کردنش خیلی کارایی نداره در فرم مسائل اصولی ما بیشتر جنبه شبیه قضای خارجی است با آیان، نه قضای حقیقی اونم با آیان. از اون قبیل نیست از قبیل قضای خارجی است یعنی اینها یک نکتهی ای داره علتی داره یک سیر زمانی معینی داره یک ریشه های معینی داره یک جهات خاصی در اونها فیش آمده که این مسئله تصدیم گیری شده خصوصا وقتی که ما مراجعه می کنیم به دنیای اسلام و علمای اصول چه این مسئله رو مثلا در فقه حنفی نمی بینیم در فقه شافعی نمی بینیم در بقیه فقه ها بینیم در خصوص فقه شیعه می بینیم این مسئله رو قصودن از تاریخی بعد از علامه می بینیم خب این مطلب رو ابن ادریس دیگران مثل این که قبل از هستند مطرح نمیکنه کنم چیزی وجود نداره در کلمات از ها لذا به جای این بحث های کبروی که این مصداق تبیان است، این البته مصداق تبیان هم نیست چون خیلی از جاهایی که خبر ضعیفه خود و استاد خوب هست من مطلعه بودن دیگه جای این طلب های بسیط هم میدونن خیلی از جاهایی که خبر ما ضعیفه و عمل مشهوره زعف خبر به خاطر فسخ نیست این جا هکن خواست کن به خیلی جهاز ضعف خبر به خاطر جهالت راویه اصلا نمیشنسون راوی رو راوی رو نمیشنسیم و ما تعجب میکنیم از مرحوم ناینی در در جنب و از قصدان که خب متابعتیشون اصلا چطور احتمال دادن وجه نکته اونها تبیان باشه که در آیه نبه آیه نبه موردش پسخه اینجا هکن فاسقان به نبه این آقا اصلا نمیشنسیم اصلا یا آکیه که چطور میخواد. میخوان مگر به تنقیح معناش میخوان بگم میگم پر یعنی هر جا که خبر به وضوح نداشت شما دنبال علم برید مگر مرادش این باشه ولی اصلا تعجب تبی تمسک با آیه نعم برای خبر ضعیف منجزر و عمل اصحاب خیلی تعجب آوره و برعکس ایده زیادی از اصحاب ما مسلما حال خوب ایده موافقن اما ایده زیادی از اصحاب ما که خودشون یکیش از تو خیلی زیادی از اصحاب ما به اخبار موسقه یعنی اخباری که فتحی و واقفی نقل میکنن بنا عمل کردن چون دوستان و از علامه نقل شده البته فکر میکنم نقل درست باشه که گفتم چرا مثلا به خبر ابوان بن عثمان عمل نمیکنید تو سر ایشان فرضاً لاقوله تعالی ان جا اكون فاسقون بنوعین فتبینون چون به ابوان بن عثمان گفتن واقفی فَتَحی چند تا مذهبی این نسبت داره اولین بار که انتقاد داده ناووسی در کتاب کشی آمده بزرگ بعد ها گفتن فتحی بعضیان گفتن غافلی ما اصلا میشکدیم نیست حال خیلی کمبستیال خود را بیچاره چندتا مذهب متهم شده ناووسی هم که وجود خارجیش مدرنیست مذهب دست ناووسی داشته باشیم اصلا خدماتمون به این که خوب یشون میگه چون یشون فتحیه تازه این فازه اینه اول اشاره به خود استاد اینه که شما اگر اخبار موقتات قبول داریم تبدیل آیه نباید با دوست تبعیض بکنیم بلا فسق اعظم من اینهاب در مذهب خوب؟ دیگه فسق دو اعظم میشه <متحق> خیلی تحجبه شاید مرمون استاد انایت نفرموندن که شاید مثلا نمیفرمون مرمون نایمی چطور این مطلب نهار کردن که این به مقتضای تبیان در زیل آیه بعدم استاد سرکنه جواب بدن اصلا این مطلب ربطی به مسئله جابریت نداره کلا هم اولا خود ایشان بیفرماید به سیره قائم است که ما به خبر خبرموسق عمل بکنیم اگر عمل بکنیم پس خبر خبرموسق همون مسئله فسقه و لذا از کردیم اده کمی از اصحاب ما مثل صاحب مدارک فقط به حدیث صحیح عمل میکنن و این خیلی مشکل است چون ما روایت فتحیه زیاد داریم مثلا روایت ابن فرزان و خود ابن فضال پسر و پدر پدر به یک معنا پسر به یک معنا جز به اصلاح به نوادر روزگارند در حدیث و معرفت الحدیث و, و ظاهر التراث ابن فضال پدر گفته شده برگشته از مذهب فقهی و گاهگاهی هم صاحب اشکال میکنه به صاحب مدارک که ایشان با اینکه به موثقات عمل میکنه در نمیکنه در یکی دو مورد به خبر ابن فزار عمل کرده راسته مبنای صاحب مدارک همینه که به خبر موثق عمل نخونه اما گاهی شده حالا از دست ایشان در رفته چی شده من نمیدونم گاهی شده زیاد هم نیست اون بون مقدار نیست که صاحب ادعا اشغال بکنه چند مورد محدود هست که ایشان به خبر موثق عمل کرده و این اصولا اشتباهی هست من فکر من اشتباهی برای استاد یا برای مرحوم ناینی پیش آمده زعفه در اصطلاح حدیث بیشترین ضعفی رو که الان ما در اصطلاح حدیث داریم بگیم در مقابل موسق و حسن مال جهالت راویه اصلا این نمی نمیشنسیم و لذا از کردیم کرارن و مرارن و تقرارن راجه مثلا از یکی از علماء رجال اهل سنت هست. درآجه به فلان چی میگید میگه, میگه ما از ایشون چیزی نمیدونیم خبرشون رو قبول نمیکنیم لکی ممکن است ایشون در اعلا درجات بهش باشه ما نمیدونیم ممکن الان در بهش متنعمه بنعیم به الهی است اما ما خبرش رد میکنیم اینکه خبرش رو رد میکنیم مال جهانت نه مال فرخ است روشن جوان؟ این ربطی به اینجا اکف فاسق بنو به ان تتبینون از بره. من نمی کنم چطور شده استادی مطلب رو آوردن و خودشون هم میدونن یعنی البته این وقتی که کتاب یعنی بحث اصول مال اون دوره هاشون هنوز تو بحث رجالی خصص فیدا نکرده کار نکرده شاید مطلع نبودن معظم خبر زعیفی که ما داریم دقت قدر و بهش عمل شده خبرهاییست که را... معظم زیادی زیادش خبرهاییست که رابیش مجهوله البته ما روایاتی هم داریم که ضعیفه در خود کافیه معامله و رباطش حتی متهم به و در حد اتهام به کذب حالا این مثلا بگیم تتبینو در اونجا برای خودش جا داره اما روایات زیادی هم داریم که مشهور عمل کردن و به خاطر جهالت راویه نه به خاطر اینکه فسخ باشه تا این بحثی که ایشون مطرح کردن از هم خدمتتون که ما توضیحاتش رو این اشاره آبره بود اما توضیحاتش را ارز کردیم توضیح دادیم مفصله و این نحوه بحث طرح بحث که این نمیدم لا حجت از اون حجت از این کافی نیست اون ما باید واقع فقه شیعه و واقع اصول شیعه پیدا بکنیم که چرا این بحث پیچ آمد من توضیحاً ارز کردم از بعد از زمان رهلت رسول الله مسلمین یواش شواش بود او به فر. اون فقر بیشتر کار کردند صحابه و بعدم تابعین و بعدم فقه ها روی خبر هم اگه کسی خبر میداد خیلی اون دقیقت لازم نمی کردن حتی ادعا شده تا سال دیویست علما به خبر مرسل هم عمل میکردند. کردن ادعا شدن علمای اهل سنت مردن نه ما و از به طور طبیعی از سالهای صد و پنجا علمای اهل سنت یواشواش به تفتیش از احوال رباست پرداشتن پس مثل سه طبقه تا زمان رسول الله در سال ساله فرمیان روایات حتی بعد از این هم روایات داریم با دو واسطه سه واسطه هم رسول الله این شروع کردن به بررسی این طبقات که آیا قابل اعتماد هستن و از کردیم اولین کاری که شد حتی این مسئله طبقه این طبقهش اون میخوره نمیخوره مرسل هست مرسل نیست اینا بحثه بود که بعد بیشتر شد اولین کاری که در علم رجال شد که زیر بنای رجال رو تشکیل داد وساقت و عدم وساقت بود این توضیحات رو ما سابقا نعرض کردیم علوم اعتباری خودش قابلیت کشش داره طبیعت علوم اعتباری چون علوم اعتباری موضوع واحدی ندارن علوم اعتباری اون که در اونها حکومت میکنه اقراض و اهدافه یعنی اون هدف و انگیزی ای که این علم توضیح کردن دنبال اون میره طبیعت علوم اعتباری اول در رجال مسئله که برشون مطرح شد مسئله وثاقت بود بعد یواش مسئله تروه شد بعد مثلا یواش این مسئله شد که مثلا ممکنه دو نفر سه نفر چهار نفر یک اسم داشته باشن تشخیص اینا بدهن مشترکات در و حالا مجرا هی hey, تدریجا آیا این تدریس میکرده نمیکرده آیا سماع داشته سما نداشته یواش شواش اینها به علوم به علم رجال اضافه شد و تدریجا از قرن اوائل قرن سوم دیگه شکل به خودش گرفت بحث اونها بحث رجال و تقسیم بندی و طبق این تقسیم بندی حتی آمدن کتاب نوشتن مثلا سهی بخاری ابن اسحابی بخاری هم دلیل باز اون اولیش نه قبلش هم, هم بود. صحیح بخاری مسند احمد مسند احمد حدود 30000 حدیث 29000 خوردی که از یک میلیون و 700 هزار حدیث جدا کرده. دقت بکن. در مصادر عام اینطور آمده از یک میلیون و 700 هزار حدیث این حدود 30000 حدیث رو جدا کرده. شاگرد ایشون بخاری، بخاری شاگرد احمده. ایفون سعی نوشته بعد سعی مسلم نوشتن سعی ابنه اله ماشاءالله یعنی اینا معیاربندی کردن طبقی این معیاربندی از قرن سبب نوشته و ما انس کردیم شباهد ما است که اصحاب ما این راق ننفتن این کار رو نکردن بهترین اشرادش این کتاب سعی ننوشتن بله اینا به عنوان حجت مطرح کردن نه به عنوان سعی کتاب کافی بر اساس حجیت نوشت کردیم کتاب کافی و فقیه بر اساس حجیت نوشته شده کتاب تحذیب و استفسار بر اساس حجیت نیست ولی گفتن روز کدو برورد این اشتباه اون دوتا چرا؟ به اسطلاح موزیه میگن گذینشی یا به عاله عربا خیارا این دوتا کتاب کافی و منلای احضار الفقیه اختیار مؤلفه. گزینشیه. اما کتاب تحذیب و استفسار هیچ کدومشون گزینشی نیستن کتب صدوق هم غیر از فقیهش نیست. امالی صدوق، معانل اخبار، خصال توحید این ها گذنیشی نیستن نه کتابی نیستن این گذنیشی باشن دقیق میکنیم؟ یا به تعبیر خود صدوق تصمیفاته تصنیفات در اصطلاح این بود که ما در یک کتاب مجموعه روایاتی که در یک موضوع واحدی هست بیاریم هم و صحیحن یه تصمیف میگفتن این اصطلاح هم مصنف میگفتن سنف سنف مثلا صدوی معانی اخبار داره هر روایتی که توش معنای خبری آمده او رو رو در توش هم ترده شرایع داره هر خبری که توش لعنه داره فعنه داره علت داره جمع کرده حالا میخواد صحیح باشد این اصطلاح مصنف میگفته مصنف مجموعه کتاب هایی بود که در یک صنف واحدی بود مثلا الالا شرایع خصال یا عدد چون خصال یعنی هر روایدی دوش لفظه واحد داشت اسنه این سلاس اربع خمس این رو جمع میکردن این اسمشون داشتن مثلا خسال ما مرحوم صدوق قبل شیخ صدوق هم ما علالا شرایع از چند تا داریم قبل شیخ صدوق رسم بوده از کردیم یه علالا شرایع ایوار خط اخباری ما مینوشت خط اخباری سر میکرد علت رو هم از اخبار بگیره یه علل شرایعی رو خط اصولی امامی نوش، اون سر میکرد از حکم عقل بگیره. حال من واسه اون بحث میشم. میخوام بگم این روشی بوده که اصحاب ما داشتن. اما بیان بگن این خبر صحیح به این اصطلاح نه. الان در همین کتاب صدوق در کتاب علل الشرایع یک دو مورد یک روایت نمیگن که هم هست، کاملا ضعیف است. اهل سنت میشه اهل سنت ضعیف کاملا ضعیف. بعد میگه قال ابو جعفر محمد دلیه بنوسی مؤلف فاضح حالا خبران, خبران صحیح این مرادش از خبران صحیح مضمونش مزمونش من قبول دارن با مجموعه شواهد این همونیست که ما از شما خود جیهت بذاشتیم. قبول مزمون غیر از خبر صحیح این اشتباه نشه پس این کاملا با این توضیحات من روشن شد که اصحاب ما دنبار قرن سوم از سالهای دیویس بگیرین یکی از کتاب که خیلی تأثیرگذار گذار بود در این اتجاه حدیثی و اصولی به این احلستان نرحبی رساله شافعی از کردم 15 سفر 20 سفر یک فصل مشبه از کتاب راجع بعدم و حجز خبر مرسل این کتاب زنان سال, ن... سال چار سال نارفنی نوشته شده تعدیب کتاب تمام شده به نظر این طور میاد یعنی معاصر زمان از است. خود شافیی فوتش تقریبا با فوت حضر سال یک سال این جلوزن اون جلوزن حالا اختلاف زد فوت ایشون با فوت حضر سال سلام الله تقریبا یکی دو سال عقب جلو دقیق می و از سال دویس به بعد دیگه این صحیح نویسی و این تقییم و این ارزیابی حدیثی در میان اهل سنت آمد در میان ما نیامد در میان ما از سال 200 چیز دیگری مطرح شد اصول. اوث این کتاب اصله حالا اصل، اینو ما توضیحاش عرض کردیم. تدریجا بر اثر گذشت زمان ادعا شده تا زمان شیخ مفید 400 تا اصل رسیده. این که میگم ادعا شده با این که خیلی مشهوره از کردیم اولین کسی که عدد چهارصد رو داره مرحوم ابن شهراشوب ایشون اجمالا خالی از تسامح نیست. تسامح نه به معنی این که دروغ مدیا اشتباه میکنه. از مستدی که لایم بغیره علیه نقل میکنه. مرحوم ابن شهراشوب در معالم العلماء نقل میکنه از شیخ مفید که اصول در امه از خواب نوشته. این لفظ اصول در امه رو ما قبل از مرحوم ابن شهراشوب جای توی عباراتی هم که الان از مفید داریم کلن چین تحبیل وجود نداره اصلا ما در مجموعه آثار شیخ مفید در این آثاری که رسیده تازگی این کنگره شیخ مفید چارده جلد مجموعه آثاریشان چاپ کرده و از آن خیلی قطوره در مجموعه آثار شیخ مفید لفظ اصول اربعه وجود نداره بله در ارشاد داره که روا اربعه تا آلاف منسقات انص این تأکید بکنم کلمه سقاتو داره و قطعاً هم اشتباه کرد شیخ مفید قطعا این چهارزاتو سقه نیست به هر حال مرحوم شیخ مفید اینو داره روا و اربعت و آلاف من سقات انصاری علیه السلام این هست در نزد شیخ مفید اما اصول اربع معنی نیست بله اینم من ارچه م... نمیخواستم توضیح بدم فقط توضیح اجمالی از کردم من سابقا در بحث خاص خودش احتمال میدین در زمان شیخ مفید این مطلب ذکر شده احتمالی که من بودم برای توضیح عبارت ابن شهراشو مراد از زمان چون احمد ابن حسین معروب به ابن غزاری کتاب کتاب رجاله ایشون اولین کسی در علمای ما و آخرین کس نه قبل از ایشان این کسی که این کاری کرده نه و ایشان برای اولین بار که معاصر با نجاشی و شیخ توسیز ایشان کتابی تا کتاب فهرست می فهرست الو اصول و فهرست مصنفات. تعبیر اصول و مصنفات قبل از ابن غذایری هست در کتابش و از اجایب روزگار این تعبیر اصول و مصنفات هم در مکتب قم هست مرحوم صدوق به کار برده هم در مکتب بغداد هست و در مسل بغداد مثلا شیخ درباره فارسی طلاقی نشه روا جميع الاصول المصنفات درباره احمد ابن هلال تا اونجایی که من دیدم نمیدونم اگه نگاه کردن اولین کسی که تعبیر اول اصول داره احمد ابن هلاله چون حدوداً متولد 180 اواخر حیات امام موسی بن و زمان حضرت رضا ظاهرا شواهد ما حاکی است که اولین کسی که لفظ اصول رو به کار برده ایشانه که ما ارز کردیم شواهد ما حاکیف تعبیر اصول اسمی نبوده که معلف کتاب گذاشته این اشتباه نکشه مثلا کتاب حریض اصلا خود حریض اسم کتاب اصل نگذاشته. به خلاف مثلا بخاری اسم کتابش الجامع و صحیه دقت مکنی؟ نقطه فنی رو دقت کردی؟ خود معلف اسمش اصل نکذاشته این اصول اربعه معنی نبوده که مؤلف کتاب یا نویسنده کتاب یا اون کسی که این احادیث رو به عرضه این رو بعد علما به کتاب دادن گفتن مثلا این کتاب ها این 400 تا اصول یه عنوانی است که بعد داده شده نه اینکه این عنوان رو خود مؤلف داده باشه به ذهن ما میاد با ت... با شواهدی که این مراجعه کردیم اون طرف اون طرف از قرن حواله قرن یعنی درست همون وقتی که سنی به فکر صحیح و ضعیف و حسن افتادن ظاهرا اصحاب ما حالا همشون یا یه عدهشون چون من هنوز احتمال قوی میدم که این اصطلاح مال واقفی ها بوده مال عامه نبوده چون که کس نگفته با میکیم و این چون مواردی که که ایشون نگفته بم بگیم ولی که بعدا توضیح فرصتی بود توضیح بدیم احتمالی رو که ما بیشتر دادیم مال واقفی ها باشه نبات تا حالا فلان اینجا نیست به هر حال اصحاب ما این از سال 200 ما کلمه اصول رو می‌بینیم هم در مکتب بغداد هم در مکتب قم و مقابلش هم مصنفات مصنفات هم هست اصول و مصنفات و مرحوم شیخ توسی فقط داره نجاشی هم نداره که احمد بن الحسین معروف به ابن قزاری صاحب رجال معروف احمد بن الحسین یک کتاب در فهرست رو اصول نوشته یک کتاب هم فهرست مصنفات ما نه قبل از ایشان چین کسی رو سراغ داریم نه بعد از ایشان مثلا نجاشه هم چی کاری نکرده ایم با مثال از اینکه یک کتاب در فهرست اصول نوشته نمیشه مثلا ده بیستا باشه خیلی بعیده احتمال دادیم نه احتمال که ما دادیم نه تا کسی متنبه شده باشه این استلاح چهارسد مال این باشه یعنی در اون فهرست اصول اقل نام چهارسد تا کتاب رو برده دقیقا احتمال بالا احتمال البته ایشان معاصر با مرحوم شیخ مفیده احتمال این هست که در زمان شیخ مفید حالا شاید مثلا شیخ مفید هم در یک جایی فرموده باشه که ما نرسیده اما اونید که ما اینه به عنوان اینیت میشناسیم یک کتاب به نام فهرستل و قصول داشتیم و چون ایشان معاصر و رفیق و هم دوره و هم بازی چون ایشون هم بچه بغداده احمد ابن حسین نجاشی هم بچه بغداده بخ... نجاشی از استطلاف پیش حسین پدر ایشان حسین ابن عبدالله درس میخونده زواهر عبارات نجاشی اینه که با ایشان تقریبا هم دوره بوده چون میگه این کتاب رو با احمد پیش پدرش خوندی نجاشی هم بچه بغداده شیخ بچه بغداد نیست شیخ توصی با احمد خیلی آشنا نیست چیزم چیزی چالش دارهش برمضان و شواهد نشون میده وقتی شیخ حمده روی احمد بن حسین کلماتی بوده بر رویشون ایشون بحث بوده یه شخصیت جنجالی بوده من این بحث نمیخوام بشه برا اما نجاشی با ایشون کاملا رفیقه این نجاشی با احمد بن حسین هم دوره رفیق پسر و استاد و بعضی از جام داره یک مورد داره در کتاب نجاشی قرعه تو علی احمد بن حسین خیلی مهمه که نجاشی میخواد بگه با اینکه هم دوره ایش بوده از نظر علمی و نجاشی مقدم بوده که نجاشی کتاب رو بر او خونده درع تو علی احمد بن حسین علچی هیچ جای نجاشیشون حدسنا احمد بن حسین نمیگه میگه درع تو اما حدسنا بیست 21 مورد از احمد بن حسین نام میبره همه به عنوان قال احمد بن حسین ذکر احمد ابن. حاضر نیست ایشون به عنوان استاد نام ببره و اعتماد علمی بر ایشون من وارد این بحثی میخوام بشم لکن اگر فرض بکنیم فرض بکنیم کتابی رو که مرحوم احمد ابن حسین نوشته ابن قرزادی نوشته راجع به اصول فرسون 400 تا داشته باشه حالا کمتر یا بیشتر رو بیشتر یا کمتر به هر حال این کاملا نشون میده که نجاشی که با ایشان رفیق بوده و متلع بوده قطعا این مقدر به ایشان قبول نداشته این مسلمه چرا؟ چون نجاشی در فهرست خودش کلن 6 یا 7 از اصول آورده در کل فهرست نجاشی لهو اصلان 6 بار بکار برده یا هفت بار مد شیخ در فهرست حدود هفتاد مورد بکار برده ولی اذا تمام اصول رو اگه با هم بریزیم با زعیفش و سخیل میشه شیخ و نجاشی رو همه رو با هم بریزیم که از کلم مرموم آبزور داره از دریعه اینا جمع کرده سل و هیفته هست باز تا چهار تا خیلی راه داره صحیحان و ثقیما و ضعیفاً علا ما هم جمع کرده کلا شده 110 تا. لذا به ذهن ما میاد که یک مشکلی هم در این اصول هست خالی از اشکال نیست با کاری که برمونج من وارد بحث نمیخواستم بشم الان نشد گفتین تیتوبار صHabitat کردین ان شاء الله یک فرصت دیگه ما با توضیحات کافی عرض بکنیم ما در میان اصحاب ما خوب طرف بکنیم هم دو دوش اونها که بحثای سندی رو مطرح کردن ما مطرح نکردیم ما مطرح کردیم بحث حجیت رو گودی خط شد مرحوم شیخ صدوق خیلی از روایت در عمالی او سندش مثلا شبیه اون تو فقیه هم موجوده اما تو فقیه نه بود. اعتماد نکرده در احکام هم هسته اعتماد نکرده حجیت غیر از روایت بود غیر از سند بود اصحاب ما و از طرف دیگه یک خصایصی از اصحاب ما داشتن که ما توضیحاتش وقتی به کردیم بیشتر اعتماد رو به جای اینکه بر راوی بکنن بر نوشتارها کردن که در اصطلاحی که بذار قرار دادم اسمش گذاشتیم تحریر فهرستی یعنی اصحاب ما مثلا فرض کنید مثلا یک نفر در کوفه خدمت امام رسیده بعد نوشته دارد. این نوشته رو اجازه میداد، اون دیگری هم نوشته رو به دیگری اجازه میداد. اهل سنت به خاطر کسرت عددی و فراوانی که داشتن فرصو مثلا از سوفیان سوری ممکنه سی نفر مهر میکرد سی نفر مهر میکرد این البته وقت زمان های قرن اول دارن می دارن می دارن. و دوم دارم میگم ما قرن های و چهارم در بعضی از مجالس املاح حدیث هفتاد هزار نفر میکرد سی هزار نفر نوشتن چهل هزار اونم از کردم نه اینکه به عنوان مثلا هم بازی های سیاسی که متعارف عرضه که زیاد میتوند نه میگن بعد که جمعیت متفرق شد اون مکان و اندازه میگرفته اونجایی که نشسته بودم مساحت میکردن تصول میشد مثلا دو هزار متر مربع به طور مرتباسه در هر دو نفر میشد چاریز نفر حساب می با محاسبه یعنی با حساب نه اینکه که تشکیل بگن اینجا هزار نفر بوده با محاسبه میگفتن در این مجلس املاع حدیث 70000 هزار نفر بودن حالا غیر از اون از اون هزار که در حدیث و حسات رو در ضربت نرسده هزارم سهر نازشته بوده همه که من نمیخوام وارد این بحثا چون اهل سنت کسرت رواد داشتن خیلی نیاز به این نوشتار ها نبود ما چون قلت روات و تحیه و شرایط دیگه این نوشتار ها خیلی اثر کرد خصوصا که تدریجن مرحله دوم حدیث چون مرحله اول تبدید علم بود که من از کم در حدیث ما ما بین سال 70 و 80 تا 150 هست مرحله دوم تنقیه و تصحیح و ارزیابی و کم و زیاد و هست و مقارنه حدیث بود که از سال 150 تا 300 در بغداده که اسم مکتب اول بغداد بشکرسیم از سال 200 تا 400 در قومه این مکتب قوم خیلی موثر بود در مکتب قوم چون دیگه با مثلا در بغداد ممکن بود دارن کوفه خود اون شخصی ببینن در بغداد که نفید دارن طبیعتا در قوم بیشتر چرا افتاد کتاب روشن شد در مکتب بیشتر بیشترین قسمت کتاب را افتاد. البته ارزیابی نهایی و تنقیه و تسکیه نهایی های شیعه در بغداد دومه که از حدود سی شروع میشه تا حدود 450 سد و با خروج جشه قطوسی از بغداد چون اینا چند بار توضیح دادیم و بیان کردیم نمیخوام. پس بنابراین خوب دقیقه بفرمایید اصحاب ما اصولا اون راه را نرفتن. اصولا نرفتن. این وضع ادامه پیدا کرد تا 450 که شیخ از برگواد در آمد، خب مقدار مقداری زیادی از اصول غیر اصول در اختیارش بود، تا 200 سال بعد، یعنی 460 سال افادیش نه، علامه. علامه آمد از همون ارزیابی که اهل سنت داشتن دو تقسیم حدیث به راوی، صحیح و حسن و محسن و ضعیف رو درست کرد. پس دقت کنید اگه علامه مثلا فرض کن 726 کتاب ایشونه ما فرض کنیم مثلا 700 حالا من با مثال میخوام بگم 700 مثلا این اصطلاح قرارداد اهل سنت از 200 وارد این کار شدن 150 مقدمات رو چیدن 200 وارد این کار شدن کتب سیحاح نوشته روشن شد اصحاب ما از حدود البته شیخ در حقیقت شیخ انصافاً کتاب رجال و همین اساس شیخ رو بگیم اول کارش رو کرد از اون تو 150، شیخ 400 مثلا 30، 400 چه، 400 20 اما تدوین نهایی که تقسیم بندی شد 70. دقت کردیم طبق این تقسیم بندی آمد حالا چه دیگه وقتیه دو کلمه میگن بعد از اینکه این تقسیم بندی آمد اصحاب با یه مشکل روبرو شدند مثلا طبق تقسیم علامه حدیث صحیح بود میام ولمیام فتوا بهش طبق تقسیم علامه حدیث ضعیف بود میدن اصحاب بهش فتحال دادن هم کافی برده هم ترجیح برده مشکل منم شد. پس این مسئله جابریت و کاسریت یک واقع علمی بود که تو چیه پیدا شد حجمتون ناکر بچیش به خود اصلا به بحث حجیت خبر اینها که اینا اینطور مطرح میکنن مطرح نبود بحثتر این بود بعد از علامه میارهای جدید آمد خب. کی آمدیم میارها فقه ما که نوشته شده در حدیث ما 300 320 350 400 خب طبیعتا معیاری می... که در سال 700 میاد برای می... آثار بودنش دستور کار بکنه این نشون اینطور نشد بعد از اینکه ارزیابی حدیث ها و ارزیابی حدیث که ایشون نوشتن حدیثشون نوشتن خوب دقت ما قبل از ارزیابی فقه مون نوشتم و لذا دیروزم عرض کردم ادعی میگم بابا شما میگین حدیث ضعیفه از کجا میگین ضعیفه شیخ بحثه ضعیفه ضعیف خب خود شیخ رواتشه آورده خود مرحوم شیخ رواتشه آورده یکی از نکاتی که دیروز عرض کردم این بود دیگه وقتی خود شیخ رواتشه آورده شما که دیگه میشه شیخ حتما شیخ نکته داشته که رواتشه آورده از اون عرض بگیم شیخ تساهل در دین داشته که نمیتون بگیم امر امر دین است و امر احکام الهی خب قطعاً قرار این موجود بود رو برده. بحث سر تبیان نیست بحث سر نکات دیگری این مطرح بوده که شده حالا سوال اینه لذام اصحاب ما که مسئله جابریت و کاسریت مطرح کرده بعد از علامه این یک بحث اصولیت نیست یک بحث قضیه خار نیست اصحاب بعد از علامه جابریت مطرح کردن چرا؟ چون با این مشکل رو, رو شد ما من هم رو برو هستیم اگر بنابشه مئیارهای علامان قبول بکنیم خب احادیث سابقی ده چکار بکنیم طبق مئیارهای علامان مثلا شاید میشینم 900 مورد چون خودم به دقت نگاه که بعضی آماران قبول نمی‌کنم. کنم 900 مورد در کتاب کافی از سهل ابن زیاده. قمنا خب جوشی را جیبو نوشه شهاده علی احمد اشعری که از بزرگان قم بلکز و القلو خیلی مهمه علی القلوش مهم اما اینکه شهادتش دروغ گوه این 9900 حدیث تقریبا 7 درصد تا 8 درصد کل کتاب کافیه خب این نسبت بالاست دیگه نسبت 7 درصد یا 8 درصد یک کتاب واحد از سهل بن زیادی که شهدا علی معاصر بود بلکز که از فرم ادهی از باب تبیان باشه اینا با این مشکل روبرو شده. محمد بن علی کوفی عبو سمینه به اصطلاح در گفتشت اش گفتشت اشهر رو کذامی ده ها فقط در کافی موجوده ای رضا اینا دهها حدیث از این شخص در کتاب کافی موجود ان محمد ابن علی دقیقای میخم صحبت سریع اینه و بعد روایات یا بسی بش فتوا دادن از ها پس اینا آمدن یک اصطلاحی رو ورز کردن تبقیه این اصطلاح نه حدیث سابق قابل ارزیابی بود نه فقه سابق قابل ارزیابی بود این مشکلی بود که برپیدا شد یکی از چند راه حل برای این مطلب پیش آبانی حال کار بکنیم؟ بلاخره باز یک کاری برایش بشه چند تا راه حل آبار که اینشالله عرض می کنیم یک راه حلش همی بود که امثال شهیدین ها رف شرا شده فرد عن الله علي محمد